گوینده محمد علوی سلام عرض خدمت همه دوستان و همراهان عزیز با شما هستیم با یکی از داستانهای کتاب فرهنگ افثانهای مردم ایران و اما این داستان تاجر و قلامسیه پرواز دادن باز برای انتخاب حاکمان یا پادشاه گویا ریشه در زمانهای بسیار دوری داره اون موقع که برای انجام کارهای خاص در قبیله اشخاصی انتخاب میشدن و بعدها ها رشد جوامع انتخابی بودن ملغا شد و آرزوش موند که سر از قصه ها در اون هم به صورت افسانه ای پرواز باز یا همای سعادت روایت تاجر و غلام سیاه تقدیرگرایانه است و گویای این سخنه که قدر عافیت رو کسی میدونه که به مصیبتی گرفتار شده باشه تاجری بود که غلام سیاهی داشت تو یکی از سفرهای خودش به بندری رسیدن و متوجه شدن که وضع شهر غیر عادیه کنج شدن و به داخل شهر رفتن از این به پرس و از اون به پرس فهمیدن که پادشاه شهر مرده و امروز قراره که برای انتخاب پادشاه جدید باز رو به پرواز در بیارن. تاجر و غلام سیاه برای تماشا به سمت میدون شهر را آفدادن. غلام سیاه از تاجر پرسید اگر باز روی سر شما بشینه و پادشاه بشید چیکار میکنید تاجر گفت طوری با مردم رفتار میکنم که در آسایش و رفاه و امنیت به سر ببرن حالا اگر باز روی سر تو بشینه چطور رفتار میکنی؟ غلام سیاه گفت مردم هیچ وقت من رو به پادشاهی قبول نمی تاجر گفت اومدیم و باز روی سر تو نشست، چیکار می‌کنی؟ میکنی؟ غلام سیاه گفت کاری میکنم که روزگار مردم سیاه بشه. طوری که هر هفت خونه یک چراغ داشته باشه. تاجر گفت با من چطور رفتار میکنی؟ غلام سیاه گفت بهترین خونه و بهترین رو برات درست میکنم و تو همچنان ارباب منی. ولی اگر برای شفاعت مردم بیای تو رو میکشم. تاجر و غلام سیاه روی سکویی کنار میدون نشستند مردم باز رو رها کردند. باز توی آسمون چرخی زد و اومد و اومد و روی سر غلام سیاه نشست. مردم هیاهو کردن و گفتند ما هیچ وقت نمیذاریم یه غلام سیاه پادشاه ما بشه. حتما باز اشتباه کرده. این بود که دوباره باز رو به پرواز در باز توی آسمون چرخی زد و دوباره روی سر قلام سیا نشست. مردم عصبانی شدن و قلام سیاه رو به داخل یک حمام انداختند. درش رو هم بستند و برای بار سوم باز رو به پرواز درآوردند. باز چرخید و چرخید و روی نورگیر بالای حمام نشست. مردم ناچار پذیرفتند که قلام سیاه پادشاه بشه پادشاه جدید از همون روز کاری کرد که هنوز مدتی نگذشته بود که مردم به بیچارگی و بدبختی افتادند و هر هفت خونه یک چراغ داشت روزی غلام سیاه برای اینکه مطمئن بشه مردم آه توی بساط ندارن کنیز زیباروی رو به دست مامورانش سپرد و خواست که اون رو به شهر ببرن و در شهر بگردونن و به بهای یک سکه بفروشنش ماموران هر هرچه کنیز رو در شهر گردوندن و جار زدن کسی حتی یک سکه هم نداشته اون رو بخره پسر جوونی عاشق کنیز شد و به خونه اومد و از مادرش یک سکه خواست مادرش گفت تو که میدونی آه در بساط نداریم اما موقعی که پدرت مرد، یک سکه توی کفن اون گذاشتی. میخوای برو اون رو بردار. پسر به قبرستان رفت و قبر پدرش رو شکافت و سکه رو بیرون آورد. اون رفت سراغ معموران که من کنیز رو میخرم. معموران اون رو گرفتن و به بارگاه پادشاه بردن. پادشاه پرسید، این سکه رو از کجا بردی؟ پسر ماجرا رو شعر داد به دستور پادشاه معموران به قبرستان رفتن و همه گورها رو شکافتن و کفن مرده ها رو گشتن مردم دیگه به تنگ اومده بودن تاجر که تا اون زمان شفاعت مردم رو نکرده بود از وضع مردم خیلی ناراحت شده بود و تصمیم گرفت که به پیش پادشاه بره و شفاعت بکنه وقتی به بارگاه رسید دید که قلام سیاه مشغول نماز خوندنه و بعد از نماز از خدا خواست که کسی به شفاعت به پیش بره. تاجر شفیع مردم شد و قلام سیاه پذیرفت و از اون به بعد روش خودش رو تغییر داد. مردم اوضاع خوبی پیدا کردند. تاجر از قلام سیاه پرسید حکمت این کارت چی بود؟ غلام سیاه گفت تقدیر این بود که من به این مردم ظلم کنم تا قدر آسایش و رفاه رو بدونم و اگر غیر از این بود باز روی سر تو میشه که میخواستی به اونها خدمت کنی پس این تقدیر بود که من به اون ای که داشتم به پادشاهی برسم حالا مردم بدی رو دیدن و از این به بعد قدر خوبی رو میدونم خب دوستان عزیز به پایان این داستان رسیدیم. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی نقطه m e نشانی ما m e h r نقطه b .com mehrandosti.blockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی